بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات لأربعة محكمة متشابهة بين أئمة اختلافة أقوال الزيارة هاتباسة أقوال النياضيس كمينجو ما ترهبكم بعضی‌ها گفتن محکم اون آیاتی که در احکام اومده و متشابه مثل حروف مقطعه قرآن الف و حامیم و اینا هرچند این قول ضعیف مدوده ترین اقوال دو تا قول من اشاره بهش می‌کنم از قوی ترین اقوالی که در تفسیر این آیه اومده بعدم دلیل بر ترجیح رو خواهم گفت که چرا فلان دلیل رو ترجیح دادیم محکم نزد جمهور ائمه اون آیاتی که مفهومش صریح واضح روشنه محکمات متشابه اون آیاتی که نیازه به تفسیر یا با حدیث یا با قول لغت عرب یا با آیای دیگر از آیات قرآن رو داره یعنی این آیه را باید در کنار آیه دیگر گذاشت تا معناشو بفهمیم مثل فرموده خداوند الا تقولوا لمن يختلف في الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون زندان این آیه میگه مطلق شهیدان زندان خب وبجوی دیگر خداوند میاد میگه ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون کجا زندان گفت عند ربهم پیش پروردگارشون زنده است پس مطلقاً زنده نیست جای خاصیه این آیه کنار آیه دی گذاشته شد مشخص شد که مفهوم مرادش چیه باید آیات کنار همدیگه گذاشته بشه تا این که مفهومش واضح بشه مفسر بشه این قوی ترین در این باب اقوال دیگه هم هست که عباس رب ی الله انهما میگه احکامات ناسخ و حلاله و حرامه و حدود و فرایض محکم اون آیاتی که درش حلال و حرام و ناسخ و منسوخ و فریزه های خداوندی اومده که ما باید بهش ایمان داشته باشیم قبولش بکنیم و متشابه اون چیزهایی هست از اخبار حالا این در روات درباس نمیمونه ولی خب در تفسیر گفته میشه و متشابه در مقابل این قرار میگیره اینجا اگر احکامه در, احکام در مقابلش اخبار ما داریم اون سری اخبار ها هست که در قیامت مثلا به فرض حور عین داده میشه حور عین وصفش اینه نمیدونم رودهایی از عثر رودهایی از مشروب لذتا للشاربین خب اینها ما نمیدونیم حقیقتش چیه میدونیم رود یعنی چی میدونیم اصل یعنی چی میدونی خمر یعنی چی ولی که کیفیتش در روز قیامت رو نمیدونیم صفات خداونم هم اینطور میدونیم شنیدن یعنی چی ولی شنیدن خدا رو نمیدونیم درک درکش رو این گفتن متشابه اینه ولی خب گفتم مشهورترین قول اینه که, که محکم آیاتی هست که واضح روشنه و متشابه آیاتی هست که نیاز, نیاز به تفسیر داره نیاز به تفسیر خصوصا تفسیری که صحیح باشه قرآن تفسیر قرآن و تفسیر خود رسول الله صلی اللہ علیه وسلم قرآن شکی درش نیست که آیاتی درش محکمه آیاتی درش محکمه الیف لام را کتاب احکمت آیاتهو کتاب احکمت آیاتهو که توغو خود آیاتش مستمعه محکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر است پس مفصل اومده خداوند آیات محکم را تفص... مفصلن مفصلا شرح شخ داره شخصی میاد نه زعیم آلبانی رحمه الله سقاف نام معتزلی جهمی چند بار میاد پیش آلبانی به مناظره بکنه تماس میگیره که من میخوام بیام به مناظره آلبانی محلش نمیده زنگ میزنه گوش رئیسشو قطع میکنه ضعف بیسا این قوته انسان برای اهل بات لباد مجال بده اصرار میکنه یه بار زنگ میزنه که نه به من مهلت بده که من حرفتو بزنه آل بنا میگه بفرما حرفتو بزنه میگه شما قبول دارید که قرآن آیاتش متشابهه الله نزل احسن الحديثی کتابا متشابهه قرآن درش شبهه هست خیلی از هس آیات اختلاف درش هست ذو الوجوه حمالت الوجوه هر وجه میتونه هم بکنی قرآن وجوه مختلفی داره شما چرا فقط سلفی ها و تو یک مدار حملش میکنید میگی الرحمن عرش ثواب یک حرف تموم شد رفت خدا بر عرش مستوی همه جا نیست تموم شد رفت یک کلام نبوده نباشد غیر از این بدعته غیر از این کتی اگر چیزی دیگه گفت مفرطعه چرا قال من رحمت الله یه جوابش میده میگه نمیره تو تفصیل مسئله سوای بر عرش نمیره تو تفصیل مسئله میگه اف الله شک فيه قولا اف الله شک آیا در خدا هم شکی هست دو تا قلتوشه شک و شک نیست اگر قبول کرد که در خدا دو تا قوله در خدا شک هست یعنی احتمال شک در خدا داد خودش این در ایمان خودش شک داره دیگه ملحد زندیق به زبان خودش گفت که نه تو به من مجال بده بحث بکنم گفت که اف الله شک تو به من بگوت دو تا قول هست مشو نیست آیا در خدا شک هست یه قول شک نیست یا اینکه نه احتمال شک در خدا هست جواب البانی رو نداد از عصبانیت گوشیر قدکر خودش ناساز ضرب شده هست از بودا نور این مقطع این قسمت در مناظره آل با این زندیق هست یعنی قسمتی که ذبح شده شکی در خدا نیست چرا شک در خدا میخوام ایجاد بکنید اف شک نه در خدا شکی نیست یقینا شکی نیست اگر ما بگیم بله یه قول دیگری اف شک خیر اگر گفتید بله یعنی تو ملحدی تو زندیقی تو منافقی ایمان در قلبت رسوخ پیدا نکرده این بحث بحث خیلی مهمه نه کنید مقدمه كل مسائل اعتقادیه نه در قرآن نه در خود خدابند نه در احادیث رسول شک نباید داشته باشید تردید نباید داشته باشیم من همیشه در درس ها هم میگم همیشه گفتم یک مؤمن یک مسلمان وظیفش که رسول الله صلی الله علیه و وسلم توقیر و تقدیر و احترام و تعظیم بکنه وظیفش هست تعظیم لایق شانه پیامبریش وظیفش است من اینکه رسول خدا حتی صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم با توقیر یاد بکنه رضي الله عنهم ورضوان عنه. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا نبغض غل قلب مونسات واصحاب بيات اگر امج ما مبتدئ شوخي نداريو كسي مؤمنين حقيقيين كثانيين كه غل نسبت به رسول الله درند اون كساني كه به رسول الله ایمان دارن اگر غل اومد مبتدئ هر كسي ميخواد باشه پدر باشه مادر باشه فرقي نميكنه شو قلب مونسات و اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بواد پاک باشه نه اگر اومد یعنی تو راضی نیستی از اون کسی که خدا ازش راضیه آیات خدا خدا رو محکمات خدا را داری نقد می‌کنی مبتدع هر کسی بخواد باشه نه محکماته گفتم مثلا این من موارد را میگم ذکر می‌کنم بهتون تک تکش و فقط این رشته کلام از دست نره این استدلالی که بجد من بشاشاره کردم اون مبتدعی که زنگ زده بود به البانی رحمه الله اشاره کرده بود استدلال کرده بود الله نازل احسن الحديث كتابه متشابهها این آیت استقلالش به جا نبوده این تشابه با اون تشابهی که در آیت سوره آل عمرانه اخر و اخر متشابهات فرق میکنه اینجا تشابه آیات متشابه از لحاظ معنا اونجا تشابه از باب اینکه نیاز به تفسیر داره این دوتا فرق میکنه هر کلمه در جای خودش معنای خاص خودش داره قرآن محکمه و آیاتی نیاز به تفسیر داره، اونجا ما گفتیم، اینجا این آیه منظور چیزی دیگه هست، الله نزل احتلال حدیث کتب متشاق قرآن نازل کرده که شباهت به هم دیگر داره بهشش، جایی که بحث بهش میشه تناقض نداره با جای دیگه، بحث انواع نعیم، انواع عذاب در قبل، جهنم، اینا متشابه، اینا تناقض نیست، قصه موسا درش تناقض نیست، اینو باید ما مد نظر باشه، این اما به اصل ما تای اون بار بگردیم رشته کلامون در این بود که بحث توقیر رسول الله صلی الله علیه و و احترام که تقدیر و توقیر از رسول الله سلام از اصحابش از یک از خودش هم دیگر وقتی که میگه که لا تقدموا بین یدی الله و رسوله چی لا تقدموا تقدمی پیشی‌گویی نگویید نکنید رسول خدا الله علیه و سلام میگه طرف میگه با بله سلطان سلطان عاق وقتی که در مقابل سلطان وحی واقع میشه آخر عاقبتش فرزند نوحه سلطان وحی این بود که چی یا بني ارکم ما فم شد این سلطان چی بود لا عصم اليوم سلطان چی بود وحی سلطان عقل ها ویله جبل یاصمني اسبر این دیگه عقل این میگه مینم بوله کوف طوفانم بیاد نجات مییابم طوفان که دیگه سابقه نداره که بیاد بالای کو بیاد بالای کو حقل ما همینو میگه الان طوفان بیاد میدیم بالای کو نجاته سلطان وحی بیگه چی؟ لا عصر این روز دیگه روز نجات نیست این روز دیگه نمیتونه به جای پناه ببری نیست سلطان وحیه قدرت و قوت و نجات از آن کی بود؟ از آن سخن وحی سلطان وحی این سلطان عقل سلطان عقل هم در این دنیا نابوده داخ زاهقه درست درست سے ولی زاهقه ولی نابود میشه ولی پس زننده از زشت هر باشه انشبیه هر چی باشه اون سلطان عقل الان بلا کسانی کہ بقول معروف عق گراہ هستند و حدیث رسول اللہ میکنن با عقل خودشون زیادن ناکنید عق ما را به کجا میکشونه در همون مسئله که من بحث شیخ البانی رو کردم کہ ثقاب می‌خواست با البانی بحث رو درباره استوا شما ناکنید سلطان عقل سلطان عقل اونها عقلن دیگه قاعده ارسطو نه عقل خودشون عقل که مقدم چینی شده از ارسطو ارسطو گفته خدا نباید جسم باشه خب چون ارسطو گفته خدا نباید جسم باشه اینجا خداوند گفت الرحمن و عرش است چند بار در قران اومده هفت تا هفت بار در قران تکرار شده خدا مستوی بر عرشه استوا هم صحابه و تابعین ابو العالی از بزرگان تابعینم تفسیر میکنه علا و ارتفع و ارتفع این اتفاق بین صحابه اون روایتی که از ابن عباس شده هم که در استوا به معنای هست روایت موضوع و پر از مجاهیل و کذابینه ما کاری به اون روایت کذابین و مجاهیل نداریم اون چیزی که ثابت از صحابه رسول الله و تابعین اینه که علو استوا به معنای و ارتفاع خب اونها مدام با سلطان عقلشون که این آیات این هفته تا آیه که درباره استواست آیات دیگر هم که درباره علو خداست مثل من في آیا در امانه دست کسی که در آسمانه گفتن اینجا فی به معنی دره میگیم ما در این اتاق رشستیم خب در فی السما یعنی در این آسمانه نه عربی را با عربی باید برید دنبالش بگردید. آمنتون من فی السما منظور اینجا فی به معنی اون در خودمون نیست در آسمان یعنی بالای آسمان هاست دلیل فرموده خداون لأسلمن نکن في جدوع النخج به معنی چیه؟ برید گفتای بر نقش شما رو آبیز خواهم کرد فی به معنای علوه این نیست که فی همیشه ظرفی باشه به معنای داخل بودن بیاد برو قرآن رو بکن قرآن گفتیم متشابهه قرآن قرآن رو تفسیر میکنه ناو کنید وقتی که گفت خدا باید الرحمن و علالعرش استوا خب ما میخوام معنای استباه رو بفهمیم شما میگید اختل نصرانی اومده گفته سلاملم م سووا بشرون على عراقی اینجا گفتی این استبای که به برربش طلاق شده استبای معنا اصیلا هست. کی گفته اختل نصرانی نصرانی حجتمنی سللغت عرب رواتشم مجاهلا بعددم بشر بر کسی عاررش نشست بعد ازی که مربان خودش کنار رفت آیا ممسئال این مخلوق با خال اصللا درسته با این شاعر جاهلییت درسته؟ ما باید قرآن را اول با قرآن تفشیر بکنیم و بعد با حلین ساسنا بعد با گفته شوعرا قمنا الان چه نیازی داریم به شاعر وقتی که تفسیرش تفسیر استوا در خود قرآن هست خداون دو جا در قرآن خارج از اون استوایی که به خودش اطلاق کرده به مخلوقاتش هم اطلاق کرده معناش مثلا لتسوى على ظهورك و اذا سويت انت ومن معك على الفلك وقتی که تو و نوح میگه تو و کسانی که همراهتن بر فلق یعنی کشتی قرار گرفتید قرار گرفتن بالا رفتن بالا اومدن درسته به معنی بالایی میاد دیگه بالا قرار گرفت یا استویت انت و من معك على الفرق در قرآن به معنی علو و مده. و ولی استویت انت و من معك همین طور کل قرآن رو بخال برق بزنید اون استویت اومده همینه غیرت نیست استوا معنی استیلا نمیاد نکنه من گفتم شبهه ای نمیاد ابتدای بحث در قبلی گفتم شبهه ای نمیاد مگر که اون شبهه زشت و زننده است غیر از اون شبهه نابوده اون شبهه پوچه غیر از این اون شبهه زشته در صحن خدا مثلا ما بگیم الرحمن و العرش سبب به معنای استیلا ما قبول کردیم این شاعر این اخطل نصرانی این حرفی که زده درباره بش بش واقعا چیره شده استوا یعنی چیره شدن استیلا همون چیره شدن بش اومده چیره شده هر که بش چیره نشد بش نیامد مبارزه بکنه با مروان مروان خودش کنار رفت اومد بش چیره شدن اینجا نبود ولی به ما بگیم اینجا استوا اومده به معنی چیره شدن خدا در قران میگه من آسمان و زمین را در 6 روز آفریدم سپس بر اثر مساوی شدم درسته بیایم اینجا بگیم من آتمان و زمین را آفریدم در 6 روز سپس بر آسمان و زمین چیره شدم حالا معناش یعنی اون 6 روزی که قبل هر روز خدام 1000 ساله دیگه درسته شیش هزار ساله خودمون یعنی شیش هزار ساله خودمون خدا که آسمون و زمین را آفریده بود که چیره بود که خدامد اومد چیره شد چیره شد یعنی مسلط شد دیگه یعنی در سلطه کسی دیگه بود خدا مسلط نبود چیره نبود بعد از شیش روز با عداد تراخی سمه سوا سپس خداوند مستوی شد بعد از اون شیش روز مستوی شد بر چی؟ چیره شد بر اون مخلوقات چه معنی زشتی داره؟ یعنی خداوند شیره نبود از قبلش خداوند مسلط نبود بر خلقش قبل از اون سپس از اون بعد از اون شیش روز اومد مسلط شد یعنی مالکسی دیگه بود ازش گرفت در سلطهش نبود اومد مسلط شد برش خیلی معنای زشتیه زننده ای هست این آفریداری خدا خالق بودن خدا من زیر سآل میره خالق بودن خدا زیر سآل میره هیچ شبه ای نیست الا گفتم در ذات خودش معنای زننده داره. خب علا گفتیم سلطان عقله چه چی چیز سبب شد که اینها دنبال تعویل دنبال مخرج تحریفی دنبال یک برهانی, برهانی بشن که این آیه را از معناش خارج بکنن بگن استوا نیست که خدا بر عرشه چه چی چیز سبب شد که برن بفرموده خداوند لا تحزن ان الله معنا و آیات دیگر و هو معکم و دیگر آیاتی که در بحث معیته چرا اومدن به اونها استناد کردن بر اینکه خدا بر عرش نیست چرا چون رستوشون گفته بود که خداوند جس نیست و لازمه جس نبودن اینه که ماده و حجم و جرم و فلان و فلان و وزن و اینا نباشه صفات مخلوقی توش نیاد از جرم و ماده و حجم اگر بگیم خداوند از یک جایی به جای دیگر انتقال یافته پس جسمی بوده یه چیزی بوده از یک جایی به یک جای دیگر انتقال یافته نه در قرآن نه در... نه در سنت ما لفظ جس رو به خدا نداریم. لفظ جس نیست این کلمه بدعت. بدعت ارسلو و بدعت کسانی که اومدن در اسلام این کلمه رو زنده کرده. ما کلمه جس رو نداریم. خداوند یک چیزی هست یا چیزی نیست. خدا یک چیزی باید باشه یا هیچ چیزی نیست. اون چیزی که عقیقی ابن سینا و فارابی داره فلاسفه دارن که خدا عدمه چیزی نیست. هیچ چی نیست خدا. خدا خدا خداプチ خداوند پیششون بضریی هیچی نیست نمبی ندونه میشناوره هیچ چیز صفات نداره حتی ذات هم نداره فلاسفه خدا هیچ نیست خدا که عقل کله میگه ابن سینا میگه خدا عقل کله خداوند میگه عقل کله خدایی وجود خارجی نداره یک وجود مطلقی بدون ذات معتزله قائلا به کی خدای یک ذاتی هست یه چیزی هست فلاسفه زندیخان کفار ملاحدن به خاطر همین متکلمین امثال معتزله و اشعره و خود غزالی میگه من کفر ابن سینا از سوش ثابت میکنم میاد تکفیرش میکنه خودش اشعری متکلمه خودش فیلسوف بودا ولی میاد ابن سینا رو تکفیر میکنه من اینجا بحث تکفیر ابن سینا نیست اینجا بحث چیه؟ سخنان کفری اونها که سبب شده خود عقره ها تکفیرش کنن خود عقره ها تکفیرش بکنن سخنشون چی بی... چیه؟ چی گفتن؟ گفتن خدا چی نیست؟ ذاتی هم نیست یک ه خدایی که چیزی نیست، چرا او رو می‌پرسید؟ چیزی نیست، لایق پرستیدن نیست. کسی که هیچ صفتی، هیچ وصفی نداره، یا هیچ وصف کمالی نداره، لایق پرستیدن نیست. قبلا من اشاره کردم در بحث جلسه قبلی، بحث موسی علیه السلام با قومش، وقتی که گفت این اجل گوسالیکی که نگاه کنید با شما سخن نمیگوید یا بحث ابراهیم که به بت‌هاشون خطاب کرد، وقتی بت‌ها رو شکست، میگه نمی‌بینن که اینا حرف نمی‌زنن، سخن نمی‌گن، اینا نمی‌شنون، نمی‌بینن. کسی که نمی بیند و نمیشتهواد که لایق پرسیدن نیست این حتی متکلمین و اهل سنت این قضیه متفقه خب اونها گفتم اصل شبهشون شو اینه که اگر بگیم خداوند بر عرش است خدا میشه جسم ما میگیم نه خیر حالا اونجا کامل نکردم حالا خدا یه چیزی هست یا خدا یه چیزی نیست بله خدا باید یه چیزی باشه قل ای شیء اکبر و شهادت چی شهادت تجوال و ولاتر قل الله قل الله الله شیء ولی نمثل اشیاء كتاب الحيدة رو بخونيك مفصل الحيدة الحيدة ترسيم كنا حتما مناظري هست مفصل در بحث صفات كلام وله خب در اسم صفات مفصل في رامون اسم و صفات قواعد و أصول ميارك حتما طالب عد بخونه و همچين خدوان ميگه كل شيء هالكون إلا وجه از أشياء خودشو خالرش کرد كل شيء همه چيز حلاق ميشه نابود ميشه إلا خدوان خدوان شيء ولن مثل ما خدوان یه چيزي هست ولن مثل ما ما کلمه جس را نداریم کلمه جس بدعته اگر منظورتون از جس شیعه یه چیزی هست بله خدا یه چیزی هست اگر منظور جسی مثل ما حاشا و کلا خدا جسی مثل ما نیست لیسه که مثل هی و هو سمیح البصیر اصول کلی ماست اصول اعتقادی ماست اصول اعتقادی ماست ناو کنید گفتم حالا اینجا در زبن بحثم بهش اشاره خواهیم کرد وقتی که یک شخصی میاد قبل از تعویلش ش دچار ذغ شده دچار انحراف شده. فعمل الذينا في قلوبهم زيغون فبعون ما تشبهها من. اون کلامی که نیاز به تفثیر داره اونهایی که قلبشون دچار انحف انحاف است میرا دنبالش و اون آاي عام که سریح نیست که نیازه به تفسییر داره. میرا بهش صناد میکن توعمل الذينا في قلوبهم زير بعون ما تشابهها من ابتغاع الفتنا وابتغاع عويله. برای که تعبیرش بکنن مراد طبق مراد خودشون به خاطر اینکه فتنه ما در فتنه بیاندازن خب نگاه بکنید الان اینجا فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون اول زیغ بود انحراف بود تعویل بود تعویل اشتباه بود گمراهی بود گمراه بودن الان بعد از این گمراهیشون دنبال دلیل از قرآن بعد اینکه اون گمراهیشون اثبات بکنن چون اعتقاد در خدا بر عرش نیست چون اگر خدا بر عرش میشه جسد حالا میخواد ثابت بکنه که خدا برعرش نیست میگه و هوا معکم خدا با ماست ما در تفاصیل سلاف را بریم نگاه بکنیم و هوا معکم و هوا معنا لا تحتن ان الله معنا ما باتفاق ثلاث احمد بن حنبل بريد بخونيد لاك إذا اصول اعتقاد اهل السنه وجماعات ابن البتيعه بريد بخونيد در كتاب الابانه بريد بخونيد للحجه في بين المحجيه كتابة كتابة ابن عميه سبهاني رو بخونيد بريد كتاب اصول ابن منده رو كتاب توحيد ابن خزيمه رو بخونيد باتفاق. باتفاق بدون هیچ اختلافي در این اشخاصی که گفتم نام بردم از ائمه اهل سنت که اومدن درباره اصما صفات خداوند سخن به میان ووردن در برای استوای خدا سخن به میان ووردن به اتفاق گفتن معیت معیت علمه هیچ اختلافی بین اونها نیست که معیت خداوند معیت علمه خدا با علمش با ماست نه به ذاتش چرا؟ چون آیات محکمی در کنارش داریم که خداوند چیه؟ خداوند عرشه. حال شخصی اگر شخصی اگر بیاد بگوید احتمال هستم حرف اینا درست باشه احتمال هم هست حرف اینا درست باشه احتمال هست که خدا با بر... با ذاتش بر باشه احتمال هست که با ذاتش هم اینجا باشه یعنی معیت هم با ذاتش اینجا باشه فی قولان میشه گفت دو تا قول هست در این مسئله میشه این وجه هم داد در این که خدا احتمالم هست با ذاتش اینجا باشه این احتمال تفسیرم هستوش نگاه کنید دنباله آیه وقتی که ما در یک اشتباهی میافتیم خداوند به دو چیز ما را احاله میکنه احاله اول اینکه به محکم بر بگردید به اون چیزی که توش اشتباه نیست دو تا قول نیست الرحمن عاجز است و خدا مستوی بر عرشه خدا بالای عرشه فی قولان هست یا نیست یه قوله محکم یا متشابه محکم این آیه و هو معكم احتمال داره با ذاتش اینجا باشه احتمال هست که با ذاتش نباشه متشابه یا محکم متشابه به کجا باید بر بگردیم به محکم یک راهش اینه راه بعدیش همون که خداوند در قران بهمون اشاره میکنه و راسخون فی العلم میگنون آمنا به كله من عند ربنا و بار بد گردین بر اگر نفهمیدیم محکم مشتابه رو نتمیسیم به محکم بر بگردینیم بر بگردین یکی به راسخون فی العلم راسخون فی العلم کیا اهمیه اهل سنتی که احادیث رو با اسناد روایت کردن احمد بن حنبل بخاری کتاب خلق قهوال عباد را نوشت در رد بر متکلمین معتزله در رد بر جهمیه امام درانی در نوشت در رد بر جهمیه در اثبات صفات خدا و علوب با و خدا بر عرش امام احمد بن مشع رد علی الجهمیه چون جهمیه بودن که انکار تعالی متعالی بودن خدا علوب و خدا بر عرش میکردند بخاطر همین کسانی که اومدن متوقف شدن گفتن که ما توقف میکنیم الا شاید حق با سلف باشه حق با خلف توقف میکنیم تفویض میکنیم به شما میگن تفیز میین متوقف میشین در این قضیه. شاید خلفم راست بگن چون دو تا قوله و هو معکم تو تاقول توش. شایدم خلف راست بگن. خدا بهتر میدونه. ما نمیدونیم معناش. این بهش میگن تفویض. این بهش میگن یک نوع کفر و زندقه و الحاد به خاطر همین متطمی میگه مفه پسر و بدترن از کسانی که قرآن را تحریف کردن از منتظه و از جمعی پسن. چرا؟ نا این مغز این ود ابن تیمیه به شما برید بخونید که کلمه مفوزه را بزنید در فتح واسر بکنید چرا؟ چرا ابن تیمیه رحمه الله میگه مفوزه از مؤوله از محرفه از معتدل پستره چرا؟ چون اینها ادعا کردن قرآن خدا معنا ندارد ما معناش نمیفهمیم اگر قرآن معنا نداشته باشد یعنی بشریت اتمام به فوجت نشدن یعنی جهل و ابو به اتمام محوججد نشده افلا یتدبرون قرآن هم عقلوب اقفال ها قلبا هم نمیتونه بفهمه یعنی ما سخن خدا را نمیتونیم درد بکنیم استبای خدا را نمیتونیم درد بکنیم نمیتونیم معناش بفهمیم وها معکوب را نمیتونیم معناش بفهمیم این نفهمیدن معنای ما یعنی چ یعنی قرآن احسن بیان نیست، احسن تفسیر نیست و احسن دیگه یعنی قرآن احسن بیانیه. یعنی نقض آیات قرآن. یعنی اینکه این قرآن نمیتونه اتمام حجت بکنه. به خاطر همین ابن تیمیه رحمه الله میگه چی؟ بخاطر همین میگه این فرقه، این گروه، این صاحب تفکر بدتر از اون کسی که میاد آیات قرآن را تعبیل میکنه و تفسیر میکنه. نه تنها در بحث استواء، آیات متشابه و محکم هست. شما یک مبتدی وقتی که یک کسی که ذیق در قلبشه در هر فردی از مسائلش به یک اصلی از اصول قرآن بهش متوکل میشه اون کسی که سب به صحابه رو میکنه قصه افت رو میاره هر چنکی قصه افت چیه براعت ام المؤمنین عایشه کسی که میاد سب به صحابه رو میکنه میاد قصه اوبت رو در غار اشاره بهش میکنه میگه بله اینجا عوبات نگاه بکنید نفاق داشت میخواست خبر بده که مشتکین به سر غار رفت اینجا تذکیهش میکنه انقال لصاحبه اسم الصاحب ربلش ميذره رفيق ربلش ميذره اونا ميگن نه منافق بوده لا تحزن ان الله معنا برد الدور ميش ده اونا ميگن نه خدا هوش دارشه لده كه بر هذر باشه از ابو بكر قلبش زيغه ديگه منحرفه بد بينا نسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ابو بكر الصديق وعمر خطاب نسبت به ام المؤمنين عائشه و ديگر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه زيغه ان دنبال دلیلی میگرده که طعنه بزنه در اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی که قائل به جسم دنبال دلیلیه بر این که چی بر این که ثابت بکنه از قرآن از هر چیزی که خدا بر هر چیزی، بله هر خدا همه جا هست دنبال دلیل مدرک کسی که تکفیریه تکفیر میکنه دنبال دلیل از قرآن بر تکفیر خدا در قرآن گفته و من قتل و من و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جهنم خالدن فیها خدا گفته خالد در جهنمه قاتل کسی قتل بکنه خالد در جهنمه و پیانبرم صلی الله علیه و سلم گفته ان الله ابا یغفر للقاتل خدا ابا ورزیده از اینکه قاتل رو بیا بخشه ما گفتیم آیه ای نیست در قرآن که تشابه باشه اینجا احتمال داره که این خلود خلود ابدی مثل کفار باشه یا خلودی از خلودی نوع دیگر برای عساد باشه احتمال هست نه خدا اینجا گفت این شخص کافره بحث کفر نکرد نه اینجا قاتل کفرش اثبره درسته بحث کفر اینجا خدا نکرد خب باید بره بغردی به محکم الان وقتی خداون میگه وقتی که در قرآن میگه فمنعف له من اخيه اثبات اخوت میکنه برای مقتول نسبت به قاتل درسته فمنعف له من اخيه چنان اخوّتی هست بین قاتل و مقتول اخو اخوّت بات ایمانی یا اخوّت نسبی اخوّت ایمانی به اتفاق اخوّت ایمانی هست اثبات اخوّت میکنه یا جای دیگر در قرآن خدا میگه و ام قایفتان من المؤمنین اختتلوا اگر دو طایفه از مؤمنین معاویه و علی رضی الله عنه اختتال کردند معاویه و اصحابش کافر بودن چون اومدن به قتال و صحابه را کشتن و علی نبی طالب عدیرا از اونها کشت یا در اونهایی که لشکره علی بن کسانی که از اون مؤمنین گشتن آیا اینها با قتلشون کافر شدن کافر نشودن چرا چون خدا اثبات ایمان کرد این متشابه یا محکمه محکمه محکمه این که قاتل این که معاویه و علی و کسانی که با اینا بوده همه مؤمن بودن هر چنگه دوچار قتل شدن اینها چیه محکمه این که ایمان داره قاتل ایمان داره قاتل بگذارید برگردیم به خود احادیث یکی از عقلانی‌ها چند مدته پیش داد و بیداد رو هندوخته بود و اینکه بخاری و ملم حادیث دروغ دوش است. حیث اومده بود مثل فرموده اصاس او جللم لای خللجننت منقاله مکنانکانه قلبی متقال و حبت تو خدن من کبره. میگه بهش نمیشه کسی که یک ذره کپ تو قلبش باشه اومده بود با عقلل خودش شرت کرده بود چرا چ دشاره کپ بشه تو لباسش تو زندگیش و نمیشه که سبد بشه که این شخص محروم از بهشت خدا بشه به خاطر که کپ برزیده. سبحان الله، شما حدیث را همطور که آیه را با آیه تفسیر میکنید، حدیث را بیاد با حدیث رسول الله تفسیرش بکنید. عدیت رفید دارید که خود کب رسول الله تفسیرش بکنه. قَالُ مَلْكِ وَقَالَ غَمْتُ النَّاس وَصَفَهُ الْحَقُ کب لباس پوشیدن نیست. کب چیه حق را نادیده و وصفه الحق و غمت النَّاس و تحقیر مادوم. این یک. دو، ان ک لا يدخل نف نف نفی دخول ابدی بهشته یا نف دخول اولیه بهشته یا جای خاصی از بهش ما داریم لا يدخل العبد الجنه عاق ولا سکر کسی که همیشه مشروب میخوره عاق والدین وارد رب جنه یک جای خاصی از بهش نمیشه حمل مجمل بکنیم بر مفسر و مفصل اونجا به تفصیل اومده مفصل اومده اینکه مطلق بهشت نیست بهشت خاصیه و ҳамчунин ин ке Худобон در قرآن گفته ин аллоҳ ла яғфиру ан yушрика биҳ ва яғфиру ма дуна ذالлик ли ман яша. Ширк акбар аст ё ғайра аз ширк акбар аст? ғайра نمیبخشه اما акбар аст. Худо ширк акбарро намебахша, аммо ғайра аз ширк акбарро Худо мебахша. Расулӯллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармоянд: "Ядخول الجنه ман کان فی قلبی حبۃ خردل من الايمان" ва ради беш ки касе ки аз иман доште бошад. Ҳадиси шафоат дорем. Ҳадиси касоне ки фухта мешанд, бад کسانی که اصحاب مرتکب کبیره بودند گناهان انجام دادن بعد در رودی در بهش دوباره می روند اونها شسته میشن نجات اون کسی که یک ذره ایمان در دلشه ناگورید این مسائل رو من آوردم در رد این شبهه کبر همین چیز در بحث صاحب قتل صاحب کبیره هست اون کسی که دوچاره قتل شده قتل شرک اکبره یا غیر شرک اکبر ایمانی در قلبش هست یا نیست هست به همین که رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرماین قالوا المفلس فينا ملاد إرهما له ولا دينار مفلس كاشي جيش نادره قال المفلس من أمتي أز أمتي مال أبدا إثبات إيمان كار إثبات إنك أمتي محمد صلى الله عليه وسلم من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال ميات بحسناتن مثل كوه أجر كوفر بوت بحسنات ميو مات نا اجراتو خطبانكو في شيء أعمال كوفر جيء هباء من ذو راس أعمال شبوشة بحسناتن كالجبال وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا زاده بدغوي كرده كشته كشته امه محمد يانه امه محمد حسنات داره نداره داره پس کافر نیست خصوصا میگه فيا خذ هذا من حسناتي وهذا حسناتش میگنم کافر که روز قیامت حساب و کتاب نمیشه کسی بیاد حسناتو بگیر ترازو بکنه ده. رو سه؟ چون اعمال نداره اعمال نیک نداره اعمال النک کافر اصلاح حساب نمیشه بلکه رسول الله Kafr zusammen میفرن اعمال پاداش اعمالنکش در دنیا میبینه کافر کافر پاداش اعمالنکش در دنیا میبینه کافر دیگه روز قیامت دیگه حسناتی نداره اعمالش روز قیامت با أنه قبیا مطلب حدیث بر میگادن پس اینجا کافر تو چی حسابو کتاب میشه کافر نیست پس ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما د یله ذلک لمن یشاء خالد مخلد در جهنم پس نمیشه اون مشرکه که چی خالد مخلد در جهنم بیام به حدیث ان الله لا لا ان الله این حدیث سبب ورود همونجوری که سبب نزول در قرآن داریم در حدیث سبب ورود داریم درسته این حدیث را کی فرمودن کجا فرمودن اسامه رضی الله عنه صحابی رسول الله بزرگویش در بالین رسول الله صلی الله علیه و سلم اسامه شخص مشتکی را در جنگ میکشد به قتل میرساند بعد از اینکه لا اله الا الله میگوید میان اصحاب شکایت اسامه را پیش رسول الله میبرند میگوین که اسامه شخصی را کش بعد از اینکه لا اله الا الله گفت گفت اسامه بیاد اسامه اومد گفت که قتلته بعد ان قال لا اله الا الله خوشش بعد از اینکه لا اله الا الله گفت قال يا رسول الله كان متعوذه بخاص خودشو پناه بده از از ترس مرگ گفت لا اله الا الله قال اشققت عن قلبه اشققت عن قلبه نو راحت مشی خاشق مشی به رسولان عمرهت شد که بر خودم گفتم ای کاش به دنیا نمیومدم اون روز اون روز نبودم تازه مسلمان شده بودم قال اشققت عن قلبه قلب ششکفتی ان الله ابا ان يغفر للقاتل قضا ابا ورزیده که به ببخشه الان مرتکب قتل شد اسامه بعد از این قتل سر بر ناززم می میخونه بعد از این قدر رسولله هم سرشکر فرمانده سپاه خودش قرار میده که او ب رس هم بعد از حیات رسولی که عمر گفت نفرست اینو بردار گفت که من فرمانده ای که رسولات این کرده بر نمیدانم عوضش نمیکنم. آیا اسام ابن زید با قتل این مؤمن با قتل اون جافسی که لالا گفت آیا عام کافر شد خالد مخلد در جهنم شد؟ در حالد مخلت در جهنم؟ نکنید نش... گفتیم با سبب ببرود. با رجوع به محکمات نتیجه گیری کی میشه مشخص میشه که قاتل کافر نیست و این خلود خلود خاصیه خاص اعصار و اون خالد مخلد کفار و مشرکی نیست چرا چون ایمان داره چون خدا اثبات ایمان براش کرد و این طائفتان من المؤمن نسبت ایمان کرد و رسول الله فرمود یا یخرج مننا من كان في قلبه مثقال حبه الخردل من ایمان پس اگر کسی اومد این متشابه را گرفت و قاتل را تفسیر کرد میگیم تو خاریجی هستی تو مبتدعی در دین خدا تو با خوارج فرقی نمی کنی همونطور که خوارج مرتکب کبیره را تکفیر کردن تو هم تکفیری هستیم مثل مثل چون خوارج هم مرد مشکلشون همین بود دیگه مرتکب کبیره رو تفیر می‌کردن اول اومدن معاویه نبی تعالی و اصحابش رو تکفیر کردند همون همون که اومدن قیام کردن بر علی عثمان رضی الله عنه که شعار اینه حکومت لله بوده می‌زدن همون اشخاص بعداً اومدن معاویه و بعدم علیب نبی طالب را تکفیر کردن و به جون اونها ناوکن نشأت فکر تکفیری از کجا نشأت گرفت؟ از گرفتن متشابه ما اگر در کتاب های عیمه سلف مثل تفسیر تبری مثلا بر بگردیم پاسخ تمامی فرقه ها چه جهمیه در بحث علوغ خدا چه خبارج چه کسانه که سبح الصحابه را می کند پاسخ اونا همه در قرآن هست هیچ فرقه نیست مگر پاسخشون در قرآن هست؟ هیچ ورقه نیست مگر پاسخش همونجوری که اینجا محاوره میگه هیچ قبور نیست متوصل به قبر میشه مگر پاسخش در خود قرآن هست هیچ ورقه نیست که پاسخش در خود قرآن نباشه خب پاسخش در خود قرآن هست خوارج وقتی که اومدن عثمان بن عفان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و وسلمو تحقیر کردن الا استحی من رجلا تستحي منه الملائکه شخصت فرشتگان ازش حیا شخصي كي وقته بر احد استاد رسول الله باشو بر احد ميزلن گفت اوف بوتيا احد فان عليك صديق وشهيدان دو صديق وشهيد برتو هستن صديق ابو بكر الصديق حديث ثابته صحيح يا نه صحيح دو شهيد تي مودان كبنا حق وشهيدان ما ابن عفان وعمر بن خطاب دو شهيد ان امه شهيد مودان بنا حق وشهيدان يا بحق بنا حق كي نهارا بشهادت رسول بنا حق كش خوارج هر کسی تجویز بکنه هر کسی تجویذ بکنه تبع عثمان رضی الله عنه عثمان را یاد بکنه خارجیه اون شخص خارجیه اون شخص مبتدع قمراهی اون شخصی که بیا طعنه در عثمان بن عفان بزنه چون رسول الله صلی الله علیه و گواه دادن که به ناحق کشته شد شبهه خوارج چی بود وقتی که اومدن شعار زدن عثمان را تکفیر کردن شعار ان الحكم الا لله حقا انا خداست و من لم يحكم بهما أنزل الله فولك هم الكفرون. شون عثمان حكم به ما انزل الله نکرده. اومرا را از خویشامندان خودش تعیین کرده و تصرف در المال کرده همونطور کسییت قط میگه و سب عثمان را میکنه و میگه عثمان اختلاص مالی کرده برای عروسی دخترش میلیون ها گرم نقره از المال اختلاص کرد و دزدی برای خرج عروسی دخترش این تهمت. این در نهج البلاغه در کتابه غیر اعلی سنت اومده ما در کتابهای ما این چیزی نیست در کتابهای مدح عثمان بن عفانه رسول از شر میکرد فرشته از شر میکردن از ایمانش از حیاش این بی حیاان خوارج اومدن با این شعار با این تعبیلات با گرفتن به آیات متشابه عثمان ابن عفان رو عفاره تحقیر دادند می اهل سنت جواب دادن ابن عباس اومد گفت کفروندون اوندونه کفر این کفر اکبر نیست کفر مخلج از مله نیست نها کنید همون شبههی که خبارج اون عرض داشتن هر کسی مثل شبهه اونها رو داشته باشه در تکفیر مثل اونها فرق نمی کنه. حالا می الان بعضی ها می گفتم نراحت می اگر اسم بعضی ها را اووردیم ما از دعات امروز که الان تو زندونن تو عربستان اگر اسم اونها رو آوردیم میگن ها اینا علما رو زندون کردن شما بعد به این علما رو بکشید ما رو به گفتی کاری که این علما نداری علم دارن ندارن به خودشون اون کسی که خارج از قرآن و سنت متشابه را میگیره محکم را میکنه ما اون شخص در دیدگاه خودمون یک شخص گمراهی نگاهش میکنیم مثلا من مثال میذارم همین سلیمان علما و اتباعش و طرفدارانش وقتی که در تصویر حکام استناد میکنم به فرموده خداوند فلا و ربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون إنها ميقان انقروه إن, إن جماعاتك الآن هستن كحكم عربسان التكفير كذلك بعد التكفير شون بزنونا عند وقت شده إنها ميقان در إن آيه إن نفي إيمان نفي أسل إيمانه لا نفي كمال نفي جان نفي أسل إيمانه فلا وربك لا يؤمنون إنها إيمانه لا چه کسانی؟ کسانی که تو را در شرع تحکیم نمی کنن قبل تیمیه رحمه الله میگه کسانی که اومدن به ظاهر این آیه قضاوت کردن و نفع اصل ایمان را کردن خوارجن ظاهر این آیه استناک کردن در نفی اصل ایمان خوارجن چرا؟ چون این آیه سبب نزول دارد سبب نزول شی بود؟ انصاری اختلاف داره با کیز و درسته؟ اختلاف داره در سر زمینی میان؟ دو نفرشون دوتا صحابیان میشوند نظر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم برای قضاوت انصاری وقتی که رسول الله رب میبینه که حق به زبیر میده ناراحت میشه نگه اکان ابن عمت چون پسر عمود بود بهش حق دادی؟ یا ابن عمتک گفت یادم نیسته ابن عمتک اکان ابن عمتک چون پسر عمت بود؟ این آیه نازل میشه فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموه اینجا این انصاری وقتی که این حرف رو زد اعتراض کرد یا ناراحت شد یا این حکم رو نپسندید این حکم رسول الله را نپسندید آ یا تکفیرش کرد نفس اصلی ما گردارش رو زد گفت و مرتد شدی کافر شدی یا اینکه نه مرتد شد خیر مرتد نشود بخاطر خاطر همین این نموتیمی میگه چون انصاریه و رسول الله صلی میگه سب انصارا نکونید و رسول الله صلی میگه لو انفق احدكم ملا اوحد ذهبا لما بلع مد حد ولا نصيفه نمیتونه هر چقدرشو مصالقه بدید به اندازه اونها نمیرسه مثل کوح صدقه بدید یک نصف کف شما هم نمیشه کف دستتون نمیشه ایمان اونها تقوا و قابل قیاس با ایمان این هر مدق ستایش است از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و میگه غیر ممکنه میگه اینجا با این ناپسندیدن این حاک عدم اجرای حکم رسول الله ناپسند شمردن حکم رسول الله به مجرد این غیر ممکنه که این انصاری کافر مرتد شده باشه چون اگر بود با دستور گردنشون میزد پس اینجا نفی ایمان نفی اصل ایمان نیست بلکه نفی چیه نفی کمال ایمان همونطور که درباره زانی هست لا یعزیز این یذ و هو مومن نفی ایمان نفیه کمال ایمان نه اصل ایمان زناکار سنسار میشه حب برش اجرا میشه رسول اللهش زنی که سنسار شد چی گفت اگر ایمانش ایمانش ایمان داره نداره ایمانش توضیح بشه کفایت میکنه به کل اهل مدینه ایمان داشت نداشت داشت اصل کلی رو فراموش نکنی قاعده کلی مبین و مفسر و محکم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك این محکمه شرک خدا نمی غیر شرک قتل زنا عدم اجرای احکام الهی مادامی که استحلال نباشه در جز قبل دیشب گفتیم شرک در طاعت اگر استحلال باشه استحلال بده حکم من بهتره اونجا استحلاله استحلال کی شرک اکبره اما اگر شخصی از هوا و هوس حکم اثر رو اجرا نکرد ریشا شو ز حکم بغیر ما انزل الله اسبال کر حکم ما انزل الله دوزی که حکم بغیر ما انزل الله فرقی نمیکنه بین بي حاکم و محکوم و من لم يحکم بما انزل الله فهلاك المكافرون سبب نزول شیء محکوم یا حاکم سببش محکومین بودن یهود بودن یهود در شأن اونها میگه در بحث سانسا و اینا که امام طبری میگه در شأن نزول اونها نه بر ما مسلمان ها چرا آیات هر چکه ما بی عبرت به عموم لفظه ولی در شأن محکومین بود درسته که بر حاکم هست فرقی نمی کنه به. ولی چرا شما میاد حکام را تکفیر می کنید چون معصیتی را انجام می دنید. چون تابعه هوا شو می شه. ولی مردم را بگید که نه ما تکفیر نمی کنید. فرقی نداره چه حاکم را تکفیر بکنید چه مردم را تکفیر بکنید با ارتکاب گناه ها در امارات مشروب است کاروان کاروانسرا هست چون هست اونا کافرن خیر اگر کسی مشروب و сахабика كت... مشروب خورد یک بار دو بار سه بار چهار قال لا تلعنه یک گفت لعنه الله ما اثر ما یتب قال لا تلعنه فانه يحب الله سبحانه ثبات ایمان هست ایمانه یک شخص مشروب خال. شخص مشروب خور ما تکفیرش نمی کنیم لعنش میکنیم از باب زجر و خالد مخلد در جهنمه بله آیات فرقی نمی این آیات چه محکوم چه حاکمش و این باید در کنار آیات محکم قرار داده بشه محکم است ان الله لا یغفر ان شرك به یغفر ما دون ذلك هر مساله اینچینی هر مساله اگر اینجا خوارج دارید در قلوب در باب تکفیر طرف مقابلش دارید مرجعه قلوب در بحث ایمان کسی توسلا بکنه مؤمنه کسی ذبح به غیر خدا هم بکنه مؤمنه نه اینکه مؤمنه کامل ایمان مثل او بکر صدیق مثل عمر بن خطاب این ارجاع هست چرا چون میکن عمل از ایمان نیست؟ دلن الذين آمن وعمل الصالحات کسسان که ایمان وردن و عمل سالال حان گفتن اینجا واب عثر دلاات بر تغیور داره مقایرت میده. ما بیام نگاه بکنیم این آ الان مشکم یا متشابهه؟ این واب این واب افیکی اومده دلاات بر تقایور واب در لغت عربی چند نوعور؟ حافظ و على الصلاات ق صلات لقا واب اوم درسته؟ بر نمازها استقامت بکنید؟ محافظت بکنید و نماز که نماز عصر و گفتن صلوه درسته این نماز صبح است که با واب اومد اینجا دلات بعد تقایور میده مغایرت داره یعنی این نماز غیر از اون نماز پنجگانه هست نه جزئی از اونه خداوند وقتی که در قرآن میگه و من یکفر بالله و ملائکتی و رسولی و جبرئیل و میکال جبرئیل و میکال غیر از ملائکه ها همیشه دلات بر تقایور نمیده جایی معطوف ربط به معطوف داره جای معطوف جزئی از معطوف معطوف علیه جای معطوف جزئی از معطوف علیه بس پیگیر در سیاق باید نگاه بکنی نمیشه به وجرد اینکه شما بگید اینجا واو اومده بگید دلات بر تقای باعت... خیر بیشتر واوها دلات به تغییر نمیده بلکه دلات بر این میده که معطوف جزئی از معطوف علیه من نمیخوام در تفصیل این مساله وارد بشم این مسائل در تحاوی و اینها بحثش میشه اینو میخوام بگم نا شبه وقتی که بعد اینجا الان پس این احتمال اومد در این آیه که این واو دلالت بر سغایور بده یا نده احتمال اومد درسته احتمال داره که عمل از ایمان باشه نباشه اینجا عمل غیر از ایمان باشه و با عمل جزی از ایمان باشه خب بریم به بت... آیات دیگر برگردیم خداوند در قرآن میگه و ما الله لیضیع ایمانکم خدا اسم نماز این محکم یا متشابه محکمه داره این که این ایمان چیه؟ نماز، کدوم نماز؟ نمازی که به سوی بیت المقدس می‌خوندن. نماز عمل عمل نیست. عمله. خدا اسم این عمل رو چی گذاشت؟ ایمان. یک قول یا دو قوله؟ یک قوله. دو قول قوله؟ یک قوله. یک قوله اینطوری بین محتوا متشابه جمع میبندیم می‌بندیم کنین یک شخصی که در قلبش گفتین زیره برای تعبیلش اون متعصبین از مرجعه برای اینکه تایید بکنن حرفشون از یه طرف میان به آیات متشابهس بناد میکنن از یه طرف به احادیث دروغ موضوع مثل چی مثل حدیث ابو لیث تمرقندی از ابو مطیع بلخی مشت کذاب و سه تا مجهولم که توش هست که هیچ دو سه تا دروغ هم توش هست قال جاء وقت سخيف ان صلى الله عليه وسلم فقالوا ما الإيمان؟ قال الإيمان زيادته كفر ونقصانه شرت زياده ايمان سؤال پرسيد بعد فرمودن بسوبه در جواب اونها ايمان زياديش كفر ونقصانش كفر وزياديش كفر ونقصانش شركه اگر زياد بشه کافر ميشه ش ايمان اگر كم بشه ش مش مشه شه مشلك چون ايمان كمو زياد نميشه پس اين حديث زلار به اين داد اين داد ايمان حقيقه مركب ايمان يه چيز ديگه حقيقه مركب همون چیزی که اراشدو گفته ایمان باید یه چیزی باشه در قلب اگر بگی ایمان نماز روزه هست میشه حقیقت مرکب حقیقت مرکب مثل عدد ده یک جزءش بره همش از بین میره اول اثبت العرض ثمنقش اول دلیلتو ثابت کن ابو مطیع بلخی کذاب حتی با حتی تو دیگه شعبی میگه اوعطی قلیسا لحدث 70 حدیثا یک فلس بش بدی کم کل بش بدی صد حدیث دروغ میگه ابو الاعتصمر خندی و امجاهلی که توش هستن اول ارص ثابت کن بعد بیا دلیل به تراش رو بیا دلیل این ایه، اینه اونه غیر از این که این آیه مخالفت داره و تضاد داره با خود قرآن باید طولیت علم آیات و زدت هم ایمانه؟ ا یه کم زد رو هذه؟ ایمان زیادی زیادی خود ایمانه ایمان زیاد میشه. غیر غیرتی که اون چیزی که شما هم برداشت کرد دیم به جاش نیست ایمان اینکه برداشت کرد حقیقت مرکبه. کی گفته عدد ده یکیشو برداشتید کل ده بمیره. یه چیزیش من یک بندنگشتم برداشتم کل دستم از نمیره یا یک بندنگشتم. یک بند انگشت رفت یک حقیقت مرکب این حقیقت مرکب از اجزایی تشکیل شده بندهای انگشته یک جز از کلش از به نمیره میره مثالتون بیجاست قاعدهتون بیجاست قاعدهتون اشتباهه شما مبنای فکرتون اشتباهه اومدید براش دلیل تراشیدید در نتیجه رفتن حالا دلیل گفتم حقیقت مرکب اووردن از گفته فلاسفه اووردن حدیث دروغ آوردن آیاتی احتمال داره شد هیچ محکمی ندارن آوردن تو چی افتادن توی ارجاء یعنی تأخیر عملت ایمان و اینکه عملت ایمان نیست و ایمان کهم زیاد نمیشه ایمان ما مثل ایمان فرشتگان ابوبکر صدیق و عمر خطاب و دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله اینا اصول گمراهی بودند چونای که سب به صحابه میکنن چه اونهایی که خاریجین تکفیر میکنن چه اونهایی که اسماء خدا را تعویل میکنن و از سوای خدا بغیر چه اونهایی که عمل را از ایمان خارج میکنه همه اینها مبتداان و اصول گمراهی همونطوری که امام شافعی میگه به اینها برمیگرده این اصول گمراهیه بدبینی و اتباع رسول الله سبحان الله علما ی تابعین میگفتن خدا لعنت بکنه اونهایی که اونهایی که صحابه, صحابه مون در صحابه مون طعن وارد کردن همونطوری که یهود ملعوناً که در الجبرئیل وارد کردن خدا لعنتشون بکنه چون میخوان واسطه بین ما و رسول الله را از بین ببرن همونطوری که یهود مدع واسطه بین رسول الله و خداوند را از بین ببرن خدا لعنتشون نازل نشه مگر. جز آن چه کسانی که سب اصحاب بکنند، چه کسانی که بیان تکفیر بکنند، چه کسانی بگن که عمل از نیس ایمان نیست، ایمان کاملی نیست، و چه کسانی که بیان درباره خداوند بدون علم اظهار نظر بکنند. درباره خدا و تقولوا علی الله ما تعلمون بدون علم بیان درباره خداوند اظهار نظر بکنند. فرقی نداره این اصول بدعتا هست از بدعت جهمیه، بدعت خوارج، بدعت مرجئه و بدعت اونهایی که بغض اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن خب سبحانك اللهم على محمد وعلى محمد